نوار با همکاری نشر قغنوس تقدیم می کند پنج رکن تفکر معسر نویسندگان ادوارد برگر و مایکل استاربرد آلبرت اینشتاین میگوید به یقین میدونم که استعداد ویژه‌ای ندارم با کنجکاوی مشغولیت فکری بردباری سرسختانه و انتقاد از خود به ایده‌هایم دست یافتم مقدمه ارکان تفکر یادگیری و آفرینش مؤثر یک باور بیش از حد این است که دانش‌آموزان ممتاز ممتاززاده می شوند و متفکران طراز اول با سحر و جادو ایده های درخشان میآفرینند. نمره ممتاز دانش آموز نخبه قهرمان امتحان است کلیک ادیسون لامپ را اخترام میکند. کند پرتاب برادران رایت در آسمان اوج میگیرند. گیرند عجی مجی لاترجی جیک رولینگ هریپاتر را خلق میکند. پدران بنیانگذار منشور حقوق ایالات متحده را تصویب می‌کنند. ویژ، رالف لورن، سرها را به سمت باندهای مد می‌چرخاند. چرخاند. هورا، موهایش را پوش می و نظریه نسبیت پدیدار می شود. ما همه از وجود این همه ایده های عجیب و غریب در جهش های نبوغامیز شگف زده میشویم اما نباید با این باور غلط گمراه شویم که جهش های نبوغامیز واقعیند. دانش آموزان و نوآوران ممتاز با تمرین عادات تفکر که به ناگزیر آنها را قدم به قدم به سمت آثار شکوهمند سوق می‌دهد پیروز می‌شوند. جهشی در کار نیست. چند راهبرد اساسی تفکر به یادگیری، فهم و نوآوری مؤثر منتهی می‌شود و مهمتر از همه شما خودتان می‌توانید بر این راهبردها مسلط شوید و آنها را به کار گیرید. این کتاب روش های عملی و ثابت شده تفکر و خلاقیت مؤثر را معرفی می‌کند که به موفقیت گریز ناپذیر در زندگی منتهی می شوند. ما نویسندگان کتاب معلمیم. روش های تفکر مؤثر را به صدها هزار دانشجو و بزرگسال سال ایم. بارها با افراد مستعد مواجه شده ایم و دیده ایم که چگونه زندگی آنها دگرگون شده یا نشده است. آنه و آدام با ایده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، مبانی را می‌فهمند، از خطاها درس می‌گیرند و ترقی می‌کنند. فیونا و فرانک با استعداد ذاتی یکسان از نقطه یکسانی آغاز می‌کنند، اما بدون فهم به حفظ کردن می‌پردازند، از اشتباه می‌ترسند، از عدم قطعیت اجتناب می‌کنند و موفق نمی‌شوند. این کتاب درباره علل تفاوت است. آموزش در انتهای دوره تحصیل رسمی شما به پایان نمی رسد حتی اگر سالها از آن دوران گذشته باشد هنوز هم دانش آموزید و امیدواریم همواره دانش آموز بمانید می توانید آگاهانه عادات تفکر را که به شما در مواجهه با مسائل زندگی شخصی حرفه ای و اجتماعی کمک می کند بیاموزید ماری کوری آلبرت انیشتین و ویلیام شکسپیر را در دوران آموزیشان تصور کنید؟ امروز از آنها در مقام نوابغ مشهور یاد میکنیم، اما زمانی که مدرسه میرفتند، عنوان نابغه آینده را به لباسشان سنجاق نمیکردند. آنها صرفاً با استفاده از عادتهای ذهنی که امکان کشف و خلق ایده های عمیق و نورا فراهم میکرد، به دنیا به شکل متفاوتی مینگرگستند. ما می توانیم نوابق مشهور را گرامی بداریم و از مطالعه داستان زندگی شگفت انگیز آنها بهره شویم اما این کتاب درباره شماست انسانی واقعی با ضعف و قوت خاص خود نه درباره یک قهرمان اسطوره‌ای به لباستان نگاه کنید و اگر عنوان نابغه آینده را نمی بینید پس شما نیز از موهبت نوآوری برخوردارید خلاقیت از آسمان نمی افتد. این کتاب عادتهایی را شرح می که خود به خود به شما برای تولید منظم دانش و بینش کمک می کند. به خاطر بسپارید، افراد خارق‌العاده، آدمهای عادی با نحوه تفکر متفاوتند. شما نیز می توانید چونین باشید. دانش عادی می توانند به اوج دست یابند. مارک یکی از دانشجویان ریاضی ما در آغاز ترم واقعا افتضاح بود. او چنان از ماجرا پرت بود که تکالیفش نه درست بود نه غلط بلکه معنا بود او صرفاً اصطلاحات ریاضی را که هنگام بحث کلاسی نوشته بود تکرار میکرد بی آنکه معنایشان را بداند انگار به زبانی که نمی‌فهمد شعر بنویسد او خود را خالصانه وقف کلاس کرد، اما نمونه بارز فردی محکوم به شکست بود اما مارک در پایان ترم به شخصی متفاوت تبدیل شد کسی که میتوانست به روش‌های هوشمندانه و خلاقانه درباره ریاضیات فکر کند. در اواخر ترم، او مسئله‌ای دشوار و قدیمی را که هیچ کس در کلاس از عهده حل آن بر نیامده بود، به روش درست و خلاقانه حل کرد. او از اواسط ترم به این بینش رسیده بود که ریاضیات معنا دارد و او می‌تواند معنای آن را بفهمد. او به ایده‌های تر مطلب مراجعه کرد. ایده‌هایی که سال‌ها پیش دیده اما به درستی نفهمیده بود. او از زمانی دوچار دردسر شده بود که یادگیری را مجموعه روش های حفظ کردن و تکرار واجه ها تلقی می‌کرد و زمانی موفق شد که به دنبال فهم عمیق ایده ها رفت. با این ذهنیت تازه، فهم منسجم مطلب نسبتا آسان و موفقیت در کلاس حتمی شد. اصول فهم ناشناخته ها و کسب بینش خلاقانه‌ای که زندگی مارک را دگرگون کرد. در تمام رشته‌ها و حرفه‌ها آموزش دادنی، آموختنی و قابل استفاده است. ما شاهد این بوده ایم که روش های تفکر مؤثر افراد عادی را به رهبران نوآور، نویسندگان، هنرمندان، صاحبان موفق کسب و کار، آموزگاران، تهیه کنندگان سینما، دانشمندان و در مواردی افراد میلیاردر تبدیل کرده است. بی اف اسکینر میگوید آموزش آن چیزی است که پس از فراموش شدن مطالب باقی می‌ماند با توجه به اینکه ما نویسندگان کتاب استاد دانشگاهیم تعجبی ندارد که بسیاری از ماجراهای این کتاب در کلاس درس رخ می‌دهد اما ما به ده ها هزار شاگرد مادام العمر نیز درس داده ایم بنابر هنگام ذکر نمونه از تجربه‌های کلاس درس امیدواریم اگر در مقام دانش آموز یا معلم در کلاس درس حضور دارید آنها را به طور عینی در نظر بگیرید یا اگر بیرون دیوارهای دانشگاهید از آنها به شکل استعاری استفاده کنید زمانی که ازوب، لاک پشت و خرگوش را مینوشت منحصررا به بازار لاک دریایی اشاره نمی کرد در سراسر زندگی به تناوب با چالشهایی چون آزمون دادن نمره گرفتن و فهم محتوای درسی مواجه می شوید. به جای برگزاری آزمون های رسمی با سوال های مربوب کننده کارفرما یا حتی خانواده و دوستان مواجه میشویم. به جای نمره گرفتن در محل کار و موقعیت های اجتماعی در موردمان قضاوت می شود. به جای فهم محتوای درسی مچران باید بر مهارت های نو و جذاب دانش نو برای بقا در دنیای دائم تغییر مسلط شویم. تمام داستان های ما با شما و زندگی شما، ارتباط مستقیم دارد. پنج رکن تغییر و یادگیری. واقعیت شگفتانگیز این است که تنها چند راهبرد آموختنی تفکر میتواند شما را در کلاس درس، اتاق هیئت مدیره و سالن پذیرایی کارآمدتر کند. شما شخصا می توانید با انتخاب پنج عادت آموختنی، موفقیت را انتخاب کنید. در این کتاب، نه تنها آدتهای مورد نظر را به تفصیل توضیح می دهیم، بلکه به جنبه عملی و ملموس آنها نیز اشاره می کنیم. در این بخش آنها را به اختصار معرفی می کنیم. یاد بگیر با مسائل پیچیده شاخ به شاخ نشوید. ابتدا ایده های ساده را عمیق یاد بگیرید. مطالب گیج کننده را کنار بگذارید و مطالب مهم را پیدا کنید. بیرحمان درباره دانسته ها و نادانسته های خود صادق باشید. سپس از قلب افتاده ها و خلح ها را مشخص و آنها را پر کنید. از جانبداری و پیش داوری و نظرات پیش انگاشته پرهیز کنید. فهم مراتبی دارد و صرفاً گزاره آری و خیر نیست. شما می توانید مراتب فهم خود را ارتقا دهید. مبنای موفقیت فهم قاطع و استوار است. اشتباه کن موفق نشوید عمدن به جواب غلط برسید تا به طور قطعی بهتر بفهمید اشتباهات بهترین معلمانند آنها فرصتهای نادیده و خله موجود در فهم شما را آشکار می کنند. آنها جهت را به شما نشان می دهند و تخیل شما را بارور می کنند کن همواره برای تشریح و گسترش فهم خود سوال کنید. سوال درست چیست؟ تمرکز بر سوالات نادرست عمری را تباه می کند. ایدهها ها سوال درست آنها را آشکار و به شما در کشف پیوندهای آنها کمک می کند. که در غیر این صورت نامرعی می ماند. جریان ایده ها را دنبال کن. با نگاه به گذشته ببینید ایدهها از کجا آمدند و سپس با نگاه به آینده ببینید به کجا رهنمون میشوند. شوند. ایده نو آغاز است، نه پایان. ایده ها کمیابند، از آنها نهایت استفاده را بکنید. پیگیری پیامد ایده های کوچک منافع بسیار دارد. این چهار رکن اصلی اجزای بنیادی تفکر موثر را تشکیل میدهند و برای بیاد سپاری آنها راه سادهای ابدا کرده ایم. کافی است اناسور اصلی را که بنا به تصور قدما اجزای اصلی سازنده ماده و طبیعت بودند به یاد بیاورید. عناصری که از سقرات قدیمی ترند و در فرهنگ و اندیشه اصر روسانس اثرگزار بودند عبارتند از خاک، آتش هوا و آب در نتیجه برای به انداختن حافظه خود و استفاده از این روش ها هر یک از اناسور کلاسیک را به یکی از راهبردهای های تفکر، یادگیری و آفرینش مؤثر نسبت می دهیم. خاک به معنی عمیق یاد بگیر، آتش به معنی اشتباه کن، هوا به معنی سؤال کن و آب به معنی جریان ایده را دنبال کن. با تسلط بر این راهبردها ها می توانید تغییر کنید و تغییر خواهید کرد. در میان اناسر کلاسیک طبیعت، انصر پنجمی مشهور به انصر ناب نیز وجود دارد که مادهی بی تغییر بوده و تمام آسمان از آن ساخته شده است. جالب است که انصر ناب در زمینه تفکر و یادگیری تغییر است. تغییر کن رکن بی تغییر خود تغییر است. شما با تسلط بر چهار رکن اول می توانید، نحوه تفکر و یادگیری خود را تغییر دهید و همواره رشد و ترقی کنید و بیش از گذشته از آموزش، شخصیت و سبک زندگی خود بهره شوید. تغییر همیشه گیست و به شما امکان می‌دهد از زندگی و یادگیری حد دکسر استفاده را ببرید. در فیلم، نمایش یا اثر ادبی متخصصان رسانه نحوه تصمیمگیری در این باره که چه کسی شخصیت اصلی داستان است را به ما نشان می‌دهند. آنکه در انتها بیش از همه تغییر کرده است. زندگی شما سفری هیجان انگیز است. زمانی که از تغییر استقبال کنید، با این تصمیم عاقلانه که ماجرای زندگی خود را در کدام جهت پیش ببرید، در صف مقدم و مرکز قرار می گیرید. به این ترتیب به قهرمان ماجراجویی زندگی خود تبدیل می شوید. در فصل‌های آتی جملات کوتاه فوق را با توصیف کامل پنج رکن تفکر مؤثر تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تمرین‌ها، فعالیت‌ها، مثال‌ها و داستان‌ها در هر فصل ارکان مورد نظر را به شیوه‌های عملی تبدیل می‌کنند که به ترقی فوق‌الاده افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند. ها و تمرینها شما را به جی پی ایس حوشمندی مجهز می کنند که در امر جهدیابی در زندگی به شما کمک می کند. ما با نمونه های الهام بخش بیشمار از انسان هایی مواجه شده ایم که فراتر از انتظارات خود شکوفا شدند. این داستان ها بر این باور خوشبینانه مهر تایید می زنند که ما می زندگی خود را با موفقیت هایی فراتر از حد تصور ادامه بدهیم. امیدواریم ارکان گفته شده به نظر دانش دگرگون کننده باشند. دبیران از این درسها برای قنی کردن کلاسها بهره ببرند. رهبران اجتماعی در کسب و کار، علوم، سیاست یا هنرها از این راهبردها به منظور نوآوری بیشتر استفاده کنند و شاگردان مادام عمر در مقام دانش آموزان همواره در حال تغییر جهان این اصول را برای زندگی بهتر به کار گیرند. این کتاب را چگونه گوش کنیم؟ کار دشوار شما این است که این ارکان را به بخشی از روال عادی زندگی روزمره خود تبدیل کنید به شما توصیه می کنیم این کتاب کوچک را با حوصله سه بار به شکل زیر گوش کنید نوبت اول کل کتاب را گوش کنید و به جزئیات توجه نکنید در سراسر کتاب با ارائه تمرین ها شما را به درنگ نگاه به گذشته تعمق و آزمایش دعوت می کنیم. اما در نوبت اول نیازی به درنگ و انجام دادن تمرین ها نیست به جای آن فهم کلیه داستانی که روایت می شود است. نوبت دوم امتحان کنید به اول کتاب برگردید و با حوصله کتاب را دوباره گوش کنید این بار درنگ کنید و به پیشنهادها و تمرینها و اجرای آنها در زندگی خود فکر کنید نوبت سوم، مدل خود را بسازید. حال که تمرین ها را انجام داده و دوباره به ارکان اصلی فکر کرده اید، این بار در نوبت سوم روش ها را به عادتهای خود اضافه کنید. به شما توصیه می کنیم، فصل ها را بارها و بارها بشنوید. تنین ارکان متفاوت در مواقع مختلف به گوش شما می رسد. هرچه بیشتر ارکان تفکر را جذب و با آنها تمرین کنید از آنها بیشتر بهره میبرید.